مصنوی معنوی مولوی برنامه یک سد و یکم گفتن موسی علیه السلام فرعون را که از من یک پند قبول کن و چهار فضیلت عوض بستن هند زمن بپذیر یک چیزو بیار پس زمن بستان عوض آن را چهار گفت ای موسا کدام است آن یکی شرح کن با من از آن یک اندکی گفت آن یک که بگویی آشکار که خدای نیست غیر کردگار خالق افلاک و انجام بر اولا مردم و دیو و پریو و مرغ را خالق دریا و دشت و کوه و تی ملکت او بیحد و او شبی گفت ای موسی کدام است آن چهار که عوض بدهی مرا برگ و بیار تا بود که از لطف آن وعده حسن سوست گردد چار میخ کفر من بو که زان خوشفاده های مختنم برگشاید قفل کفر صدمنم. بو که از تحصیر جوی انگبین شهد گردد در تنم این زهر کین یاز عکس جوی آن پاکیز شیر پرورش یابد دم عقل اسیر یابد که از عکس آن جوهای خمر مست گردم بوبرم از ذوق امر یابد که لطف آن جوهای آب تازگی یابد تن شوری خراب شورم را سبزه پیدا شود خارزارم جنت معوا شود بو که از عکس بهشت و چارجو جان شود از یاری حق یارجو آنچنان که از اکس دوزخ گشتم آتشو در قهر حق آغشتم گهز ز عکس مار دوزخ همچومار گشتم بر اهل جنت زهربار گه ز عکس جوشش آب همیم آب ظلمم کرده خلقان را رمیم من ز عکس زمهریرم زمهریر یا ز عکس آن سعیرم چون سعیر دوزخ درویش و مظلومم کنون وای آنکه یا به زبون شهرح کردن موسی علیه السلام آن چهار فضیلت را جهت پایمزد ایمان فرعون گفت موسی که اولین آن چهار صحت باشد تنت را پایدار این علل که در تب گفته اند دور باشد از تنت ای ارجمند ثانیا باشد تو را عمر دراز که اجل دارد ز عمرت احتراز وین نباشد بعد عمر مستوی که بناکام از جهان بیرون روی بلکه خواهان عجل چون طفل شیر، نه رنجی که ترا دارد اسیر. مرگ جو باشی ولی نه اجز رنج، بلکه بینی در خراب خانه گنج. پس به دست خیش گیری می میزنی بر خانه بی که هجاب گنج بینی خانه را مانع صد خرمن این یک دانه را پس در آتش افگنی این دانه را پیش گیری پیشه مردانه را ای به یک برگ زباغ مانده همچو کرم برگش از رز رانده چون کرم این کرم را بیدار کرد اجدهای های را این کرم خورد. کرم کرمی شد پر از میوه و درخت. این چونین تبدیل گردد نیک بخت. تفسیر کنت کنزن مخفیان. خانه برکن کس عقیق این یمن صد هزاران خانه شاید ساختن گنج زیر خانه است و چاره نیست از خرابی خانه مندی شو مایست که هزاران خانه از یک نقد گنج تان عمارت کرد بی تکلیف و رنج عاقبت این خانه خود ویران شود گنج از زیرش یقین اوریان شود لیک آن تو نباشد زانکه روح مزد ویران کردن استش آن فتو چون نکرد آن کار مزدش هست لا لیسل الانسان الا ما سعا دست خواهی بعد از آن تو کیدریغ، دریغ اینچونین ماه بودن در زیر میغ من نکردم آنچه گفتند از بهی گنج رفت و خانه و دستم تهی خانه اجرت گرفتی و کرا نیست ملک تو بابای یا شرا این کرا را مدت او تا اجل تا در این مدت کنی در وای عمل پاردوزی می کنی اندر دکان زیر این دکان تو مطفون دوکان هست این دکان کرایی زود باش تیشه بستان و تکش را میتراش تراش تا که تیشه ناگهان برکان نهی از دکان و پاردوزی وارهی پاردوزی چیست؟ خورده آب و نان میزنی این پاره بر دلق گران هر زمان میدرد این دلق تند پاره بر وی میزنی زین خردند ایز نسل پادشاه کامیار با خدا زین پاردوزی ننگ دار پاره برکن از این قهر دکان تا برارت سر به پیش تو دکان پیش از آنکین مهلت خانه کری آخرایت تو نخورده زو بری پس تو را بیرون کند صاحب دکان دکان را برکند از روی کان توز حسرت گاه بر سر میزنی گاه ریش خام خود برمیکنی که دریغا آن من بود این دکان کور بودم بر نخوردم زین مکان ای دریغا بود ما را برد باد تا ابد یا حسرتا شد للعباد مرا شدن آدمی به زکات و تصویرات طبع خشتن و طلب کردن علم غیب که علم انبیاست بودم در خانه من نقش و نگار بودم من در عشق خانه قرار، بودم از گنج نهانی خبر، ورنه دستنبوی من بودی تبر آه گرداد تبر را دادمی این زمان غم را تبر را دادمی چشم را بر نقش می انداختم همچو تفلان عشقها می باختم پس نکو گفتان حکیم کامیار که تو تفلی خانه پر نقش و نگار در الهی نامه بس اندرز کرد که برار از دودمان خیش گر بزگنای موسا، بگو وعده سوم که دل من ز گشت گم گفت موسا آن سوم ملک دو تو دو جهان خالص از خسم و عدو بیشتر زان ملک ککنون داشتی کان بودن در جنگ و این در آشتی آن که در جنگت چنان ملک دهد بنگرن در سال خانت چون نهد. آن کرم که در جفا آن هات داد در وفا بنگر چه باشد افتقاد. گفت ای موسا چهارم چیست زود بازگو شد و هرسم فزود. گفت چارم آن که مانی تو جوان، موی همچون قیر و رخ چون ارغوان، رنگ و بو در پیش ما بس کاسد است، لیک تو پستی، سخن کردیم پست، افتخار از رنگ و بو و از مکان هست شادی و فریب کودکان، بیان این خبر که کلم ناسا علی قدر اقولهم لا علی قدر اقولكم حتی لا یکزب الله و چون که با کودک سر و کارم فتاد، هم زبان کودکان باید گشاد. که برو کتاب تا مرغت خرم، یا مویز و جوز و فستق آورم. جز شباب تن نمیدانی بگیر، این جوانی را بگیر ایخر شعیر، هیچ آژنگ نیفتد بر رخت تازه آن شباب فرخت فر نا نه نجند پیریت آید برو نه قده چون سر به تو گردد دوتو نه شود زور جوانی از تو کم نه بدندانها خللها یا علم نه کمی در شهوت و تمس به آل که زنان را آید از ضعفت ملال آنشنان بکشایدت فر شباب که گشود آن مجده اکاشه باب قوله علیه السلام من بشرنی به خروج سفرن بشرته بالجنتی احمد آخر زمان را انتقال در ربیع اول آید بی جدال چون خبر یابد دلش زین وقت نقل آشق آن وقت گردد او به عقل. چون سفر آید شود شاد از سفر که پس این ماه می سازم سفر. هر شب تا روز زین شوق هدی ای رفیق راه اعلا می زدی. گفت هر کس که مرا مجدد هد، چون سفر پای از جهان بیرون نهد، که سفر بگذشت و شد ماه ربیع مجدور باشم مرورا و شفیه، گفت او کاش سفر بگذشت و رفت، گفت که جنت تو را ای شیر زفت، دیگری آمد، که بگذاشت سفر گفت او کاشب ببرد از مجده بر پس رجال از نقل عالم شادمان و از بقاش شادمان این کودکان چون که آب خوش ندیدان مرغ کور پیش او کوسر نماید آب شور همچنین موسا کرامت می شمارد که نگردد صاف اقبال تو دارد، گفت، احسن تو، نکو گفتی ولیک، تا کنم من مشورت با یار نیک. مشورت کردن فرعون با ایسیه در ایمان آوردن به موسی علیه السلام گفت او این سخن با ای سیاه. گفت جان افشان بر این ای دل سیاه. بس عنایت هاست متن این مقال زود دریاب ای شه نیکو خسال وقت کشت آمد زهی پرسود کشت این بگفت و گریه کرد و گرم گشت بر جهید از جا و گفتا بخلک آفتاب تاج گشتد ای کلک ای به کل را خود بپوشاند کلاه خواست چون باشد کلاه خورشید و ما هم دران مجلس که بشنیدی تو این چون نگفتی آره و صد آفرین این سخن در گوش خورشید ارشده سرنگون بر بوی این زیر آمده هیچ میدانی چه وعدست و چه داد می کند ابلیس را حق افتقاد چون بدین لطف آن کریمت باز ای عجب چون زهرت بر جای ماند زهرت ندرید تا زان زهرت بودی اندر هر دو عالم بهرت زهره که از بهره حق بردرد چون شهیدان از دو آلم برخورد غافلی هم حکمت است و این اما تا بماند لیک تا این حد چرا غافلی هم حکمت است و نعمت است تا نپرد زود سرمایه زده است لیک نیچندان که ناسور شود، زهر جان و عقل رنجور شود، خود که یابد چنین بازار را که به گل می گلزار را، دانه را صد درختستان عوض، حبه را آمدت سد کان اوز لله دادن آن هبه است تا که کان لله لهو آید بد است زان که این هوی زعیف قرار هست شد زان هوی رب پایدار هوی فانی چونکه خود با او سپرد گشت باقی دایم و هرگز نمارد همچو قطره خایف از باد و زخاک که فنا گردد بدین هر دو حلاک چون به اصل خود که دریا بود جست از تف خورشید و باد و خاک رست ظاهرش گم گشت در دریا و لیک ذات او معصوم و پابر و نیک هین بده ای قطره خود را بیندم تا بیابی در بهای قطره یم هین بده ای قطره خود را این شرف در کف دریاش و ایمن از تلف را آید چونین دولت بده است قطره را بهر تقاضاگر شده است الله الله زود بفروش و بخر قطره ده بهر پرگوهر ببر الله الله هیچ تاخیر مکن که ز بحر لطف آمد این سخن لطف اندر لطف این گم می شود. کسفل بر چرخ هفتم می شود. هین که یک بازی فتادت بلعجب هیچ طالب این نیابد در طلب. گفت با هامان بگویم ای ستیر، شاه را لازم بود رأی وزیر، گفت با هامان مگو این راز را، کور کمپیره چه داند باز را.